اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگرد احسب الناس أي يتركون أي يقولوا آمنا يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند. و آزمایش نخواهند شد ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم باید علم خدا درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد ام حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ ساء مَا يَحْکُمُونَ آیا کسانی که اعمال بد انجام میدهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد چه بد داوری می م که یا مجلی ق الله فَإنَّ أجل الله لآد ووهو سمی او العم کسی که امید به دیدار خدا و راخیز دارد باید در اطاعت فرمان او بکوشد زیرا سرآدی را که خدا تعیین کرده فرا می رسد و او شالابار و است. و من جاهد فا. این ما یا جاهد لی نفس. این الله لغني عن العالمين. کسی که جهادو تلاش کند برای خود جهاد میکند. که خداوند از همه جهانیان بینی است؟ والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ عنهم سيئاتهم ولا نجزيان لهم ولا نجزيان لهم الذي كانوا يعملون بکسانی که ایمان آورده و کارهای شایست انجام دادند گناهان آنان را میپوشانیم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش می‌دهیم. وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که برای من همتاعی قائل شوی که به آن علم نداری از آنها پیروی مکن بازگشت شما به سوی من است و شما را از آن که انجام میدادید دادید با خبر خواهم ساخت. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند آنها را در زمره صالحان وارد خواهیم کرده ومن من الناس من يقول بالله فإذا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَازْمُرْتُم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار میبینند، آزار مردم را همچون عذاب الهی میشمارند. ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید میگویند ما هم با شما بودیم آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیانه است آگاه تر نیست و, و مسلما خداوند مؤمنان را می و به یقین منافقان را نیز میشناسد وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولحم الخطاياكم وما هم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون و کافران به مؤمنان گفتند شما از راه ما پیروی کنید ما گناهانتان را بروهده خواهیم گرفت آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بردوش نخواهند گرفت آنان به یقین دروغ گو هستند هستند وَلَيَحْمِلُنَّ اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِیَامَتِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ آنها بار سنگین گناهان خیش را بردوش میکشند و همچنین بارهای سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود و روز قیامت به یقین از تهمتهایی که می بستند سؤال خواهند شد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَمَا نُوحٌ رَاءَ بِسُوءِ قَوْمِهِ فَرَسَادِيم و او در میان آنها 950 سال درنگ کرد اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیتی برای جهانیان قرار دادیم و ابراهیم اِذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان تعلمون ما ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قومش گفت خدا را پرستش کنید و از عذاب او بپرهیزید که این برای شما بهتر است اگر بدانید إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له شما غیر از خدا فقط بطهایی را می پرستید و دروغی به هم می بافید آنها ای را که غیر از خدا پرستش می کنید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند روزی را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را به آورید که به سوی او بازگشت داده میشوید. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبین اگر شما مرا تکذیب کنید جای تعجب نیست امتهایی پیش از شما نیز پیام برانشان را تکزیب کردند وظیفه فرستاده خدا جز ابلاغ آشکار نیست اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می‌کند سپس باز میگرداند این کار برای خدا آسان است قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد میکند یقینا خدا بر هر چیز تواناست من من هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات میکند و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار میدهد و شما را به سوی او باز میگردانند. و ما انت بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير شما هرگز نمیتوانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و برای شما جز خدا ولی یا وری نیست. والذین كفروا بآيات الله ولقايه اولائك اولائك يسومر وحمتي و, و, اولائک اولائک اولائک و لهم عذاب أليم. کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند از رحمت من معیوسند و برای آنها عذاب درد ناکیست فما کان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار این نفیذلی اما جواب قوم او ابراهیم جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید. ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه هایی است برای کسانی که ایمان میآورند.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 و یلعن بعضا و مأوا کن ما من ناصرین ابراهیم گفت شما غیر از خدا بوتهایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد سپس روز قیامت از یک دیگر بیزاری می و یکدیگر را لعن میکنید و جایگاه همه شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انّه هو العزیز الحکیم و لوط به او ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است ووهبنا له اصحاق و یعقوب و, و جعلنا في ذریته النبوة والكتاب وآتیناه اجره فی الدنیا وانه في الآخرة لمن الصالحين. و در اواخر عمر اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و نبوت و كتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است و لوتا اذ قال لقومه این لکم لتأتون الفاحشه ما, ما سبقكم بها من احد من العالمین و لوت را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت شما عمل بسیار زشتی انجام میدهید که هیچ شک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وتأتون, وَتَأْتُونَ فِي نَاديِكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ آیا شما به سراغ مردان می‌روید و راه تداوم نسل انسان را قطع می‌کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می‌دهید اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اگر راست می‌گویی عذاب الهی را برای ما بیاور قال رب صن علی القوم المفسدين لوت اراد کرد پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا ان لا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين و هنگامی که فرستادگان ما از فرشتگان به شارت تولد فرزند برای ابراهیم آوردند، گفتند ما اهل این شهر و آبادی را و به شهرهای قوم لوت اشاره کردند، هلاک خواهیم کرد، چرا که اهل آن ستم گرند این نفی لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ابراهيم گفت در این آبادی لوت است گفتند ما به کسانی که در آن هستند آگاه تریم او و خانواده اش را نجات میدهیم جز همسرش که در میان قوم گناهکار باقی خواهد ماند ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اینا منجوک و اهلک اینا امرأت من الغابرین انگامی که فرستادگان ما نزد لوت آمدند از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد گفتند نترس و قمگی مباش ما تو و خانواد را نجات خواهیم داد جز همسرت که در میان قوم باقی میباند ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا بما كانوا يفسقون. ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهم ریخت وَلَقَدْ دَرَكْنَا مِنْهَا آية بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و از این آبادی نشانه روشنی برای کسانی که می باقی گذاردیم وَإِلَى مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وَرُجُلْ يَوْمَ الْآخِرِ وارجو اليوم الاخر ولا لا تعثو فی الارض مفسدین و ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفته ای قوم من خدا را بپرستید و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین فساد نکنید فكذبوه فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولی آنها او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنان را فرا گرفت و بام با دادان در خانه‌های خود به رو در افتاده و مرده بودند وعاد وهمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدوهم عن السبيل وكانوا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ما طائفه عاد وسمود را نيز هلاككرديم و مساکن ویران شدهی آنان برای شما آشکار هست شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود از این رو آنان را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند و و فرعون و هامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا, كانوا سَبِقِينَ و قارون و فرعون و حامان رانیز حلاک کردیم موسا با دلائل روشن به سرابشان آمد اما آنان در زمین برتری جوئی کردند ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا و منهم و منهم من اخذته الصيحة و منهم من خسفنا به الارض و منهم و منهم من أغرقنا و ما كان الله لیظلمهم ولیکن ما هر یک از آنان را به گناهشان گرفتیم بر بعضی از آنها توفانی از سند ریز فرستادیم و بعضی از آنان را سیهی آسمانی فرو گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بر بعضی را غرق کردیم خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ولی آنها خودشان بر خود ستم میکردند مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا یعلمون مسئله کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مثل انکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده در حالی که سوست ترین خانه ها خانه انکبوت است اگر می دانستند این الله یعلم ما یدعون من دونه من شیئ و هو العزیز الحکیم خداوند آن غیر از او می خانند می و او شکست ناپذیر و حکیم است و تیلک الامثال نضربها للناس وما و الا العالمون اینها مثال است که ما برای مردم میزنیم و جز دانایان آن را درک نمی کنند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآیة للمؤمنين خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید در این عایتی است برای مؤمنان اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلابت کن و نماز را برپادار که نماز انسان را از زشتیها ها و گناه باز می و یاد خدا بزرگتر است و خداوند را انجام میدهید میداند. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا و ایلهنا و ایلهکم و مسلمون با اهل کتاب جز به که از همه می است مجادل نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند و به آنها بگویید ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و شما یکیست بما در برابر او تسلیم هستیم و كذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون و کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم کسانی که کتاب آسمانی به آنها دادی به این کتاب ایمان میآورند. و بعضی از این گروه مشرکان نیز به آن مؤمن میشوند و آیات ما را جز کافران انکار نمیکنند. و ما کنت تتلو من قبرهی من کتاب ولا تخطوه لرتاب المبطلون. تو هرگز پیش از این کتابی نمی و با دست خود چیزی نمی نوشتی مبادا کسانی که در صدد تکذیب و ابطال سخنان تو هستند شک و تردید کنند بل هو آیات بینات فی صدور الَّذِينَ اوتُ العلم و ما یجحد بی آیاتنا ایلا الظالمون ولی این آیات روشنیست که در سینه دانشوران جای دارد و آیات ما را جز ستمگران انكار نمی کنند و قالو لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما عند الله وانما انا نذیر مبین گفتند چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده بگو معجزات همه نزد خداست من تنها بین دهنده ای آشکارم اولم يكفهم ان انازل عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذکر لقوم يؤمنون آيا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت میشود در این رحمت و تذکر است برای کسانی که ایمان می آورند قل کفا بالله بيني و بینکم شهیده یعلم ما في السماوات والأرض والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولائیک هم الخاسرون بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیانکاران واقعی هستند و و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسما لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا يشعرون آنان با شتاب از تو عذاب را میطلبند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود عذاب الهی به سراغ آنان میآمد و سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند و ان آنان با عجله از تو عذاب می طلبند در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول و یقول ذوقو ما کنتم تعملون آن روز که عذاب الهی آنها را از بالای سر و پایین پایشان فرا می گیرد و به آنها میگوید: بچشید آنچه را عمل می کردید روز سخت و دردناکی برای آنهاست. این ای بندگان من که ایمان آورده اید زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید کل نفس ذا اقاته الموت ثم الينا ترجعون هر انسانی مرگ را میچشد سپس شما را به سوی ما باز میگردانند والذن آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها تجری من تحتی ها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایست انجام دادند آنان را در قرفه از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آن جاریست جابدان در آن خواهند ماند چه خوب است پاداش عمل صبروا على ربهم يتوكلون همانها که در برابر مشکلات صبر و استقامت کردند و تنها بر پروردگارشان توکل میکنند وكأی من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وإیاكم وهو السمیع العلیم چه بسا جنبندهای که قدرت حمل روزی خود را ندارد خداوند او و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناز ولا ان زلته من خلا غسمدی والآار و س خورا شمس والقام را لا الله ف يُفبون و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است میگویند الله پس با این حال چگونه آنان را از عبادت خدا منحرف میسازند الله بسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شیء علیم خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده میکند و برای هر کس بخواهد محدود میسازد خداوند به همه چیز داناست ولا ان سالتهم من نزل من السماء ما ان فاحيا فاحيا بالارض من بعد موتها ليقولوا الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد میگویند الله بگو همد و ستایش مخصوص خداست اما بیشتر آنها نمیدانند وما هذه الحياة الدنیا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است اگر میدانستند فَإِذَا فا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا, فلما نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ هنگامی که سوار بر شوند خدا را با اخلاص میخوانند اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد باز مشرک می شوند لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بگذار تا آنچه را از آیات به آنها داده این انکار کنند و از لذات زود گذر زندگی بهره گیرند اما به زودی خواهند فهمید اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ندیدند که ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم را در اطراف آنان در بیرون این حرم می‌روبایند آیا به باطل ایمان میآورند و نعمت خدا را کفران می کنند و من اظلم من من علی الله کذبا او کذب بالحق لنبا جاءه علیسه فی جهنم مثول للكافرین چه کسی ستم کار تر از آن کسه است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آنکه به سراغش آمده تکذیب نماید آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست والذین جاهدوا فینا لنهدین لهم و وإن الله لمع المحسنین و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیک است